نمیتونه گلنار بیاد از بالا اونو ببینیم مثل یه خونه دیده مثل یه خونه کچولوه مثل مثلا نمیتونه آ... اینطوره همطور که در درباره تیر به شما ارز کردم از تیر رو شکار نداشته حالا آقایی از کاخ پادشاه هم نداشته اصولا کاخ پادشاه طوری بوده که دختران و زنان و هر و هرمسارها بیرون رو ببینن یعنی اگه به بالا بام هم, بالا بام هم, بالا هم بیرون دیده نمیشد. از بیرونم تو دیده نمی شد. خوب بیفرد. بیا آمد خرامان برای اردشیر پر از گوهر و بوی و مشک و عبیر بدان ماه گفت از کجا خواستی که پر, دل قم... که پر قم دلم را بیا راستی چون این داد پاسخ که من بنده دل دلوجوان به مهر تو آکنده یعنی بندی تو هستم دل آرام و گنجور شاهردوان که از من با شادو شاد و روشن روان توجه پرمه ایراد انگشت دوم که میتونه بگذاریم گنجور یک دختر نمیتونه باشه گنجهای پادشاهان چندین قفل و کلید داشته و هر کدوم از این کلیدها در نظر یکی از معتمدان پادشاه بوده وقتی میخواستند اینجا در باز کنن همه اونا رو جمع میکردن در حضور اون هفت نفر در گنج پادشاه باز میشد هیچ گاه دیده نشده در تاریخ که گنج رو بسپران دختر نه تمام مفصود است هم است از آن پس چنان بود که شاهردوان ز اخترشناسان روشن و فرزانگان بیاورد چندی به درگاه خیش همین باز جست اختر و راه خیش بگفتند راز سپهر بلند همان زختر وی که چون است و چند که بگریزد از مهتری کهتری سفه و نجادی و گنداوری وزان تس شبت شهر یاری بلند جهان را بگیرد به خم کمند دل نام مهتر نیکبخت گفتار ایشان قمین گشت سخت شوشد روی گیتی به کردار غیر کنیزک بیامد برای اردشیر یعنی شب شدید کنیزک بگفتند چه روشن روان بگفتند با نامدار اردوان به چه من ت... پیشنهاد کردم به گفتان چه گفتن فرزانگان سه سپهری اردوان بدو گفت گر من از ایوان شوم زره سوی شهر دل ایران شدم یعنی از ایوان به گریزم اه... تو با من سگالی که آیی برا گره در باشی به نزدیکش شای... گر یعنی یا میایی با من بریم بیا اینجا میمونیم. اگر با من آیی توانگر شوی همون بر سر کشور افسر شوی این بیت رو بیاد داشته باشید دو موقع خودش تفسیر خواهم کرد چون این داد پاسخ که من بنده هم نباشم جدا از تو تا زنده ام. چون این گفت با ماه روی اردشیر که فردا به باید شدن ناگذیر همین بود تا شب بر آمده کوب به خوردردوان جای شد بیگروه از ایوان بیا اومد به کردار تیر بیاورد ورد گوهر بره عربشیر جهانجو چون روی گلنار دید همان گوهر رو سرخ دینار دید بپوشید پوشید خفتان و خود برنشست یکی تیغ زهراب داده به دست این گفتارم نادرسته. برای کسی رو که میفرستن به آخر اسباه نه تیغ در دست داره نه خفتان داره خفتان در زرادخانه در اصله خانه زیندار خانه پادشاه نه کسی که اما به اسبار چیز بده. بده خوب. همون ماه خب بر محروخ بردگربارگی نشستن تو رفتن یک بارگی از ایوان سوی پارس بنهاد روی همین رفت شادان دل و راه سخن سوم مگه ایوان یعنی کاخشا دربون نداره مگه خندق نداره شما شنیدی دیدی دی یا تو بقی ایوانش شو یه در دروازه داره بعد یه پشتش خندق داره اون خندق رو هم پوری داره که چوب و چوب و آهن ساخته شده میکشن بالا شب که درار بستند اون رو میکشن بالا تا کسی نتونه از ازجا برو کنه هم حصار شهرها اینطوری هستش هم, دو هم دو کاخش دو... پادشاهی چطور ممکنه همچین چیزی چنان بود که بیماه روی اردوان نبودی شب و روز روشنده بان زبالین نبرداشتی دوش و یال مگر چهر گلنار دیدی به فال یعنی صبح وقتی که بیدارن شد اول چهر گلنار رو ببینه چه آمد هنگام برخاستن به دیبا سرگاهش آراستن کنیزک نیامد، نیامد به بالین اوی برا شفت و پیچان شد از کین اوی بی آمد همانگاه مهتر ببیر که رفته از بیگاه دوش اردشیر از آخر ببرده از خنگ و سیاه یعنی دوتا نام اسبه. که بود باره نام بردار شاه دل مرد جنگی برام از جای به بالای در آورد پای یعنی سوار اسب شد به رهبری یکی نامور جای دید دید جای به دودر بسی مردم و چار پای ببینید اینجا در خود کارنمه الان در ترجمهی که شده به دست اون چهار ترجمان و به دست فضلسی رسیده این بخش نایمده بخش اینه که عدوان دستور داد که 5000 سوار آماده بشن نادرستی این سخن اینه که یک پسر 15 ساله شونزه ساله با یه دختر حرکت کردم چرا باید 5000 نفر بگم بالی نابره و افزاینده نسنجید نه... که آماده کردن پنج هزار نفر یک هفته زمان میبره برای حرکت و پنج هزار نفر بخوان حرکت کنن روششون کند میشه و به اون دو نفر نمیرسن سه ایران دارای دیوان برید بوده که با آتش مخابره میکردن اینو کافی بود که به دیوان برید دستور بدن با آتیش مخابره کنن که دو نفر در آنجا میان جدوشونو بگیرید یه پنگزار نفر رو تدارک داشتن این همه در... بله در اینجا نایمده ولی در خود کار نمومده با این آتش علامت دادن و اینا رو بهش میان دیوان برید این دیوان برید بوده که هم نامر رو می بردن و هم با آتش علامت می دادن این کسی با... که این کار رو بهشون می گفتن اینا... اینا در دیوان برید بودن بله در اون دفتر بقول حالا پستخونه اون موقع مثلا هر تقبه در یک میل یعنی کرد. یعنی 1600 راه یک میل بود مم. که این میل کنارش هم البته دیوان و برید و آخر و زندگی افراد و انبار و, و اینا بود اصل این چیزای آخر بله یعنی نه نه منظورم اینه که چون خیلی موقع با آتیش علامت میدادن با, با حسن... فرمان های فوری رو میدادن ولی نامه وقتی حرکت میکرد از میل اول که حرکت میخواست بکنه بالای آتش روشن میکردن میل دوم میفهمید که یه نامه داره میاد. یک نفر سوار میکردن بر اسب آماده اون شخص اول وقتی نامه رو میداد به دست این و این از میل دوم حرکت میکرد. همین که از میل دوم حرکت میکرد بالای میل دوم آتیش روشن میکردن برای میل که کمون بفهم اونا همین کارو بکنن همینطور به بمو... سرعت این نامه دست به دست میشد میره در سیاست نامه خاجه نظامون که اومده در... که در خوبی دیوان و برید که میگه که در هر روز شست فرسنگ راه سی فرسنگ راه به سی فرسنگ نامه میره چون فرسنگ زمان و باستان فرسنگ 6 میل بود یعنی تقریبا هر کدوم 1600 خوردهی تقریبا به اندازه 10 کلومتر امروز میشد. اگر 30 فرسنگ راه بره یک نامه مثلا 1000 سال پیش 2000 سال پیش یعنی 300 کیلومتر راه رفته می دونی چه فاصله بزرگی است؟ این دیوان تازه شیش شیش اگه 6 میل بوده یعنی نیم دیگه تا هزارو 1600 تا یه تا یه تا یه تا یه تا یه تا تا تا یه تا یه تا یه این یه تا یه تا یه تا یه تا یه تا یه تا یه پوستو تلگرافشون یه سنگی نوشتن به یک گفته ای از گویا یا گزنفون یکی از تاره نویسان فرنس... یونانی که نه, نه باد نه ار نه آتش نه درخش نه ام... تندباد هیچ از اینها نمیتونه جلو حرکت و سرعت سواران دیوان برید شاهنشاهی رو بگیره خوشبختانه این هنوز در آمریکا یک همچین سنگ نوشته ای هست خب با شدن یک چنین دیوانی کاریه که به ویپ بعدی میگن نفر رو با اون تدارکات که شما یادتونه یه بار برگشت گفت یک صفر 5 نفر کرده کنه بعد یه سری برن اون جلو برای اونها غذا ببرن آذوقه و تدارک کنه. اینا چه من... ناآگاهی افسانه‌نگاران خانه‌نشینه دقیق نیست این قصه خودش رو نشون میده می‌فهمید به رحبر یکی نامور جای دید به دودر بسی جای به دودر بسی مردم و چارپای بپرسید زیشان که ایدر دشت سواری به شبگیر اندر گذشت یکی گفت زیدر یعنی از اینجا به خنگ و سیاه دوتن برگذشتن تازان راه به دنبال ایشان یکی قرم پاک قرم یعنی نر شو اسبی همی برپراکم خاک از اسامی اینجا هستش که حالا من میخونم از اول پیامک ها رو بخونم سوالات رو مطرح کنم درود بر شما استاد گرامی افتخاری آن زمین استاد عزیز آیا نام شهرهای ایران داره معنا و مفهوم است با تشکر لطفا پاسخ بفرمایید آیا حسین خسروی بر این همه اینا نام ها مفهوم داره من تقریبا بیست سال پیشه که رفتالی نوشتم برای کرمان و نام کرمان چون همینطور که در شانام حتی خادمات کرمان را از واژه کرم گرفتن در حالی که من پیرامون دو هزار نام ایرانی رو بررسی کردم از همستو پهلاوی شانامون دیگر کتاب ها خود فرنگ جغرافی معلوم شد که کرمان یعنی میهن کونستانی اون گفتار رو خواهش بکنم بخونید این گفتار توی تارناما یا سایت بنیاد شغور هست بخونید اگر نبود فکر میکنم باشه میتونید از بنیاد نشعبور درخواست کنید می بینید که این نامها بیهود گذاشته نشده بعضی از نامها از بس که روزگار برش گذشته چند هزار سال خلاصه شده و فعلا ازش مفهوم و معنای پدیدار نیست ولی روی همرفه بر همه این نام ها میشه معنا و مفهوم گرفت. بادرود و با درود و منده نباشید خدمت استاد و مجری صبور آیا این شعر اشتباه نیست شاه ترکان سخن مدعیان میشنود شرمی از مظلمه خون سیاووش باد سیاووش باد. باد بله شمسایی از رشت خب این شعر از آن حافظه به همین ترتیب سیاووش باد باشه درسته درسته بله شعر حافظه بله. بله. بعد پیامک بعدی آیا دانشنامه ایرانیکا زیر نظر احسان یا شاطر متبر است این نبایی از تهران فرستاده. از من نخواهید که در باره کار دیگر کسان سخن بگم چند تا سوال هم هست شما, در... شما کتاب بنیاد نشابور رو بخونید اون کاری است که من و یاران من انجام رسودم یه داشتیم از شاهنامه یادداشت های شاهنامه استاد خالقی تازه چاپ شده در مورد اون نا پرسیدند بله اون دکتر خالقی مطلق در هین گردواری شانومش یک مسائلی به یک مسائل رسید که اون مسائل رو گرداوری کرده و اکنون در یک جد اونا رو به چاپ رسوندن اینطور که من شنیدم و نظرات خودش و چه تصمیه فردوسی چیست؟ فردوس؟ پیری ریده در عوستا بوده در زبان فارسی باستان بوده یعنی دوزی که پیرامون اون پوشیده گرفت است دیوار داره یعنی باقی که دی اطرافش دیوار داره پاییری دهیزه دا بعد این در زبان های یونانی و اروپایی تبدیل شد به پارادایز بعد, در... بعد در عربی شد فردوس پرویس بود در فارسی پردیس بود فردوس شد و بعدم هم همون بالکونه تازی شده یا اینکه تغییرش یافته پرداز نام روان همیشه آگاه ایران فردوسی است سلام میخواستم بپرسم کلمه استر همون ستاره است یا استر من نمیدونم این حالا جون استر نام یک, یک زن هست که در تورات اسم بود پاز باز در طور دادش نام اسم بود زن خشروشا بوده بس. منش همون ستاره است احتمال داره چون که این نام ستاره در ما اگه بخوامان شهر بدم وقت بگیری با اینها اگر میخواید ببینید ما در فارسی داریم در عوستا داریم ستر بعد در پهلوی داریم ستارک بعد در فارسی داریم ستاره یعنی تغییر پیدا کرده نام دیگه ست... ستاره در فارسی هست اختر که در آرمنی میشه آختار نمیه خی اومد خب خودشو نشون میده در اینجا. بعد همین نام در انگلیسی هست استار در فرانسه شد اطوال یه خورده دگرگون شد ولی در انگلیسی استاره حالا اگر ما گونه آلمانیش در نظر بگیریم شده اخشترنه ببینید این شه تغییر یافته شده سینه علفش هم که هستش تهوره هم هست اخشترنه واژههایی که خوشه و شه هم داره اینها شه با اینکه ملایمتر خه رو دفع میکنه مثل مثلا ارتخشر شده اردشیر یا مثلا شده شتر شده شهر یا شده سیاوخش شده سیاوش یا آتخش شده آتش بنابراین اگر این اخسترن آلمانی رو در نظر بگیریم در حقیقت این داره خی اختار ارمنی و اختر فارسی رو دو داره میگه و چون بقی... اگر علف و برداریم ازش می... بیمونه خشایت خشیته در زبان اوستایی یعنی درخشان یعنی خورشید یعنی نیاکان ما میدونستند که این ستاره هر کدوم یه خورشیده این یک در بزرگی از دانش بشری که با شکافتن همین واژه ما میبینیم حالا اگر نام استر ستاره گذاشته باشن نام گوراژن دور میست اینو ستاره خانم از ویژن تن که سپاس به خاطر برنامه‌ای که برایش سانیه شماری میکنن و به اجازه بدید اسامی رو بخونم آیه مساواتیه بهبهان سوشیاند از کرج بعد حضورتون نیلوفر و فاطمه خانم اه، و درموند جم و ریز پرسیدن بازم یه بار سؤال کرده بودن دو شهر کناره هم هستند یکی جم یکی ریز و شهرهای ویژه هستند که از سوی یکی از کارگزاران وزارت نفت آقای مهندسادات اون شهر شرک جم رو انتخاب کرد برای اینکه کارمندان کارماندان اصلویه بتونن در اونجا زندگی بکنن خانه و مدرسه زیاد استقبال نشد اینا مرتبا میان تهران و بر میگردن ولی خب اونجا این امکانات پدیدار شد از جمله اینکه در اونجا بهترین اصل جهان پیدا میشه و یه گونه از خرمام در اونجا هست که خیلی خرمای خوب صادراتی که به دست تو بازارها نمیاد دیگه دوتا شهر خیلی خوبیه کنار دریای فارس بعد اسامی رو من بخونم آریانا و ماندانا خانم از کرج به و اصلا نگفتند مهناز خانم باز مثل که از کرج هستن تو این دو تا رو هم... این چند تا رو کنار هم بله همه‌شون از کرج هستن محمد رسولی نژاد از مشهد سارا خانم زهرا کاظمی گرامی از قزوین داتور از اهواز کامران بالانی از از نام محمد از کامیاران کام کام کامیاران بله, بله، کام... نه این که نوشتن به من این دوستمون همکارمون نوشتن خودش هستیم کامیاران یه در بین بله، بله، و... بله رفتم سنندر. بله رفتم آقای امداد دینی از لاهیجان آیا نادری از اصفهان و پس از یعنی این روابضون یعنی چی پسونه پس فندش جایگاه است که در هم هست ما در نزدیکی تبریزی جای داریم روابضون سانش پسفنده پسفنده جایگاه برای لوا باید حالا دقت کرد میخوند <دارم دستان> به دستور گفتان زمان اردوان که این قرم باری چرا شد دوان چون این داد پاسخ آن فر اوست به شاهی و نیکختری پر اوست نویسندگان زمان ساسانی فر رو فر و فر کیانهی رو به گسفند در بردن که در بعض سکه هاشونم پیده میشه پسانگه باد دمان اردوان همین تاخت با رنج و تیره روان یکی با رنگ و بوی بسی مردم آمد به نزدیک چون این گفت با موبدان نامدار حالا البته من درست کردم بپرسید از مردمان چون موبدان کنجا نبودن که بپرسید از مردمان نامدار که کی برگذاشتند آن دو سوار چون این داد پاسخ به دو رهنمایی که ای شاه نیکختر و پاکرای به دانگه و خورشید برگشت زرد به گستر شب چادر لاجورد به این شهر پویان از اینجا گذشتند پویان دوتن گرد و بی آب گشت دهن یکی قوم بود از پس یک سوار که ندیدن به ایوان نگار. چون این گفت با اردوان کتخلا یعنی وزیر. کزیدر مگر بازگردی به جای. یعنی دیگه دنبال نگیر کار. سفح سازی و رای جنگ آوری که اکنون دگرگونه شد دابری. چون وقت از پس پشت او برنشست از این تا باد بادمانت بدست یعنی اون فر شاهی به اردشی رسید و دیگه تو کاری نیبتونی انجام بدیم. چو بشنید زو اردوان این سخن بدانست کن کار او شد که چو شب روز شد با پگاه بفرمود تا بازگردد سپاه. خب اینجا ما چون اگر اجازه بفرمای دوستداد به ساعتخوا میکن با توجه به می که کردیم ن کنم اینجا خوب باشه بتونیم نگه داریم و چون تعداد زیادی تلفن داریم تلفن ها رو پاسخ بفرمایید و پیامد کار رو من بخونم بیشتر توجه کنم این که میدونم از برای شما ععرض کنم چراونگان دید من یک بار بیشتر نگفتم تلفن ها رو اما تعداد زیادی تلفن آماده هستش و بسیاریش رو شاید نتونیم پخش کنیم. چرمندیش و پیامک به وقت از شما. بعضی از دوستان میکنید به بنده. من سعی میکنم بخونم تا اونجوری که میتونم اما واقعا هیچ فرقی نمیذارم بین کسی، هیچ فرقی نیست. بس به سوالی داره که با توجه به موضوع برنامه هستش. بعضی از دوستان این های تکراری میکنن و اصلا من فکر می‌کنم درست نباشه. به مرور استاد پاسخ خواهند گفت. و الان ما اگر موافق باشید دوست تا ها رو بشنویم دونه دونه بیام هم مطرح کنیم تا زمان باقی ما ساعت ۲ ست دقیقه خستهیم با صدای آرام بخششون که واقعا خیلی استفاده میکنیم. و اینکه از استاد میخواستم بپرسیم که راجب نسخه سان جوزف توضیح بدن و اینکه چرا اسم اینو مثلا می‌شه نسخه لندن یا نسخه سان جوزف یا فرانک خیلی متشکرم بالانی هستم از تهران <متصفح> ما به کجا داستان رسید چون میخوام پیگیری بکنم داستان اونجا رسیدیم که اردوان سپار رو فرمود که برگردم به تیسون. برگردم چون ه... پس دردد در در داشتیم چونه از هفته برنده از اینجا شروع خواهیم کرد نسخی سنج جوزفین نسخیست که چند سال پیدا شده و اخیرانم هم به همت گروهیم به شاب رسید بعضی واجه های خوب داره و نسخی کوهنی خوب خواب توجهه اما اینکه چرا بهش میگن سن جوزف برای که در یک کتاب کنه به نام جوزف در لبنان بوده و بعدم البته لبنان که همسایه ایران همیشه هم که جز ایران بوده احتمال داره که شاهنامهی در اونجا بوده باشه اما نسخه های دیگر رو اروپاییان از ایران به در بردن و هر کنون رو بردن به جایی و نام خودشون رو به اونجا دادن به اون نسخه دادن سلامی که از داستانهای شاهنامه داست عاشقانه ترین داستان شاهنامه فردوسی کدام است؟ ای حمید حیدری نجفاوات از نجفاواده سهم. بله. شاد باشید عاشقانه ترین بهترین داستان که به نتیجه خوبا میرسه داستان زال زالو روداواس با هم که ما این رو خوندیم. بل. و شما که گفتید که از شبکه پخش میشه. بله بل. شما رو پیگیرم. حالا بونجاد نیشابور یه رقیبی شد برای شما برای که ما از شماره های اولام فرزندان و, و بنیاد ما با موضوع داریم ما با موضوع داریم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اونها رو میتونن گوش کنند عاشقانه ترین واقعا داستان اون البته عشقای دیگه بوده ولی که مثلا فرض کنیم سیاه وخش به سرنجام و بد میرسه و اینها با خون تموم میشه اما این عشق خیلی زیباست و سرنجام خوبان داره یا این چند بیت سروده روانشاد فردوسی است یا افزوده و اگر سروده فردوسی گرانقدر است به مکانهایې که اشاره می‌کنم ارتباط دارد یا خیر در منطقه ممسنی پارس ابای رحمت دو قلعه سفید و گول و در منطقه مرودشت پارس دو قلعه دیگر به نام ستخ و کزیم وجود دارد البته آثارشان هست و این دو بیت را من در شاهنامه خواندم دجی بود کشخان دندی سفید بدان دش بود ایرانیان را امید پناه دل ایران ایران زمین گل است سفید و ستخرو رو کذین. و سؤال دوم باز در منطقه ممسنی بخشی پهناور و حاصلخیز خیز وجود دارد به نام بخش رستم و دشت رز و روسای فحلیان و بخلو و تنگ پرین و گویند که دشت رز محل نباد رستم و سهراب بوده و تنگ پرین محل نبرده رستن با افراسیاب. زفهلو به بهلو کشیده تناب سراپرده شاه افراسیاب که رستن به تنگ پرین اندر است. فرامر از تنگ بالاتر است. ظاهرا فهلو همین فهلیان فعلی می باشد که روسایی بسیار قدیمی و مردمی هستند بسیار فهیم و باسباد. سپاس بذارم. رامین هستم از دشمن زیاری ممستنی پارس. در به شما و در اون مردمی که اینطور مهر سانامه و رستم پالوان رو دارن و نام رو میذارن و به این ترتیب خودشون رو منتصب میکنن یعنی شهرشون رو, رو به رستم و سغراب ما میدونیم که سغراب از سمنگان اومده سمنگان در قرب افغانستان امروزیه که از دقیقت جنوب توران اینا حرکت کردن اومدن و دیجه سفید هم باید یه جایی باشه بین مرز ایران و توران مونتها مردم از بس که محبت دارن درستیم بخواهد همه جا رو رستم رو از آن خودشون و من یک بار در برنامه گفتم که مثلا فرض کنید کجا در درستان آخر رخش میگن هست که رخش اینجا نافرمانی کرد از رستم رستم هزار و زرب شلاغ بشت زر رخش شیهه کشید که در شهر چین اون رو شنیدن. ببینید اینا عشق مردمه که بگید رستم از آن ماست. رستم این خیلی خوبه. احساس خیلی خوبه. اما اون عبیات از شانمه نیست. علاقه مسلمان یک از جمله اینکه یک کسی از اهل جهرم بوده تو این نسخه های شانمه بی نام جهرم رو بیجا آورده. بلکه شهر نام شهر خودش رو اینجا مدرک کرده باشه با این حال مهری که ایرانیان به باستان ایران دارن و به رستن دارن این خود شایسته است سلام و درود این هفته دیگه پرسش من رو پاسخ بدیم من ندیدم این رو در هفته هایی گذاشته ببخشی نام های سوحیب که اه... خوانده می شود بله و سیامک به چه معنی هستند خیلی ممنون دوستی آشنا از آذربایجان شاد باشید سوهی بر حقیقت یعنی دیده شده به چشم آمده این معنی سهیستن در زبان پهلوی به معنی به نظر آوردن و نگریستن با دقته و سوهی از این ریش آماده سیامک هم در عبر سبوده سیاه یعنی قار سیاه یعنی زمانی که بشر از سرما در حقیقت پناخ برده به قارها این یک بخش عظیمی از تاریخ جهانی که خوشبختانه در تاریخ ایران باقی مونده منطقا بعدا دیگه سیامک ظاهرش نشون از سرما و اینها نمیده سلام استاد تعداد زیادی از این پیامک داریم یعنی حالا به خاطر این دارم میخونم چون میزونم چندمین بارم هست از شما استاد جنوبی سلام اه استاد آیه قوم لک و زبان لک باستانی است مینایی از کوه دشت لورستان. و بسیاری دیگر دوستان از لرستان آل عزیز این قوم برای ما این, پیام... این پیامک تو این زمینه فرستاده درود بر, بر نامش چی بود آیه مینایی از کوه دشت لرستان مینایی کرامی و درود به قوم لک بله قوم لک قوم باستانی و پیوند خیلی نزدیک از این یک با کورد داره از یک با لور و کردان از نجات گودرزن و لوران لکها، لک ها هر دو از نجات گیو گودرز باشن و باستانی هستند و از من هم به دیار لک درود باشن رهورد به چه معناست؟ کریمی رهورد رهورده؟ به چه معناست؟ اینو آقای کریمی از قوچان فرستدن رهورد من نداریم در فرهگا ممکن رهنورد بوده باشه اگر این... رهنورد باشه اینه کسی که راه میپیموه این رهورد هست ره نه من ده. ندیدم این چنین باژه یه از بچها چون که جدیدن به این برنامه پیوسته خواهش میکنیم که هرچند ایشون همیشه با حوصله تکرار میکنن باز هم تکرار بشه تا حداقل ما که جدیدن پیوستیم به این برنامه اطلاعاتمون کامل بشه می‌خواستم خواهش کنم که اگه برای این برنامه امکان داره تکرار این شبای یک شنبه رو که در مورد شاهنامه فردوسیه یه تکرار هم داشته باشن در طول هفته و والا شب‌های دیگه با تشکر با هر خاتون هستم درود به با خاتون گرامی پاسخ شما رو آقای هدونتی خواهم دادم اطاعت میکنم تکرار این رو شما میتونید از طریق همین برنامه بشنبید و تکرار داریم حالا من نمیدونم تو چه زمینی بیشتر منظور تیم بود تکرار کنیم چی رو ما تکرار کنیم یعنی این برنامه که اینجا گذاشته میشه در روزهای هفته بازم ا... این نه میتونم تکرار میتونم. میشه ما یک برنامه ریزی داره شبکی نمیتونیم خوب را راهی به گوهر خاتون اینکه شما به این اینت، مراجعه بر... کنید اینترنت اونجا تمام برنامه‌ها زرد شده برای شما میتونید بشنوید آره از این طریق میتونید گوهر خانم w w w.radiofarhang دات آی از این تعریف میتونید شما برنامه ها رو بشنوید چشم به شب ها رو بشنوید ببخشید من کام استاد جنیدی درست کردن من تو نوشتی شما کامبادان نوشته شده کام یاران اسم اصیل کرماشان میباشد خواهش میشه تصحیح بشه استاد جنیدی تصحیح کردن در بسیار زیبایی در بین کرماشان و سنان برش. درود بر شما استاد جنیدی میشه درباره سونا سردار ایان باستان با توضیح بدیم ممنون میشم محمد هستم بله رسیدیم به موقش برس چه خصوص پرچمی تحول پرچم ایران چگونه رنگ های پرچم ایران کی پرچم و رنگ های پرچم از به این شکل از کیش گرفته ما تشکریم از برنامه خوبتون و از استاد ارجمندمون جناب آقای جونیدی عزیز. چهطایی ما رنگ بر روی پرچم ایران از زمان برستون دیگر بسیار بوده و سیگونگون سرخ و زرد و بنفش هواگشتتون پرمیونی درش بسیار از این رنگ‌ها بوده که بعداً همه به هم پیاست در زمان‌ها مختلف رنگ‌های ویژه به خودش پارسوماش که با نام جدید مسجد که به نام جدید مسجد سلیمان گفته می شود یعنی چه ببخشید استاد من بس نماینده جان عزیز قلمه‌کون خیلی بد هستی چون به وقتی اینجوری من میگفت. یعنی خطشون بوده چیه؟ آره یک یه دفعه دو... یه حرف میوفته دو تا حرف میشه یه دفعه من بعد بگردم ببینم این حرف چیه تا تو تخیل کنم ببینم. مقاله بگیرید, بگیرید. نمره‌شو کم می‌کنید. نه نه نه, نه, نه. اصلا نمره کم نکن. حرفو من کم کردنم نمی‌دونی. تو به من بر برم می‌گردی بوزم. فارسی که معلومه که به نسبت نخصوصش و ماش هم که پسوندشه دیدید. که مثلا پسوند جواب باشه. خواستم از استاد رو فرصم که این جمعه خرد بهترین حدیه آسمانی است یا از فیردوستیه یا نه و سابقه دیگه این که می خواستم بدونم استاد چند سالشون هست پاس استاد خیلی جبون هستن خرد برتر از هرچی ایزد داد بله خرد برترین بهش خداونده من هفته تو دو سال زمان برم گذشته و روزی سبت میده باستانی میگیرم میگفتم من اصطاق خیلی جوان هست <تصفح> ما باید خیلی بالا تلاش کنیم که برستیم اصطاق اینقدر بردش میکنیم اینقدر پروزیه و اینقدر شادا که هر دفعه میان تو برنامه ما حس حال ما همه تغییر میکنه. یک خموده می نیستیم سراع افراشته مثل شاهنامه فیدوسی مثل فیدوسی با درود بر استاد ارجمند دکتر جنیدی و با درود بسیار بر روان شاد افشینک هفتمه میخواستم از استاد خواهش کنم درباره آینهای نمایشی در ایران باستان بویژه آینهای یاد شده در شاهنامه برای ما بفرمایمد سپاسگزارم گزارم هستم روز بر کیانو وقتی که تو گفتی افشینک هفت مهر خب شنوندگان که گرامی ما درک نیم کنن افشینک من بر آغاز میخواستم نامشو باید مهرک که نشد بعد در روز میر و ماه میر و جشن مهرگان در درمانگاه میر که برای کمک و یاری به های فقیر شهر نشابور درست کرده بود به خاطر ورزی به یک بیمار جان خودشو از دست داد. میر با او همراه شد. و خب حالا تو اینو گفتی دیگه من این برنامه شد اساسا فراموش کردم که دیگه چی از ما باشه داستان های نمایشی. ببینید ببین عزیزم هر بخشی از دوستان میتونه نمایش بشه. البته به شرطی که هنرمندانمو بخون روی کار در حقیقت تکیه بکنن و البته نمایش ها خیلی خیلی در حقیقت رفیق خواهد بود با خرج سیاد بخواد به امید خدا در آینده بله یه پیامه هستش من این که از چنونده هست از ما خواسته برای همه مریض ها به ویژه پدر عزیزشون که در سی سی او امشب در سی سی او بستری شده دعا کنیم از طرف یکی از چنوندگان برای همه بیماران شفا میخوان شفای آجی هم امیدی از دارم. یک شب یکی بیماری اسیسی همو به ما زنگ زد با بله. بله. بسیار بلحقه بیمار و لرزان امیدواریم شفا و بهبود هم از آن خداست با امید خدا ساده بود و گوارمش به تا واجه رو اون خواهد که محبت بر رو عردشی و ساترانی سفات شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید باشوکی از کم از تران شد این بر شما باشوکی ساسان که همطور کرد کردم یه نام ساختگیست به دلیلی که در پیشتر از ساسانیان هیچ ما سابقهش نداریم بعد از هم هیچ ایرانی نام خودشو به همین قیاس نام فرزندشو نگذاشت ساسان اردشیر بوده در فارسی باستان ارتخشتر یعنی پادشاه پاکو درست ارتخشتر تبدیل شد به ارتخشتر در پهلوی کوهن بعد در پهلوی نو تبدیل شد به ارتخشر بعد در فارسی تبدیل شد به اردشیر از خود واقعه اردشیر معنیش بر نمیاد اما وقتی که ما گونه پاسی باستانش در نظر بگیریم یعنی پادشاه درست پادشاه خوب پادشاه مهربان فرخ هم که نامش برنامه بگیر فرخ فرخه من نمیدونم دیگه فرخ رو چطور معنی کنم فرخ مفهومش با نام هردو یکی هست از این ساده نمیتونم بگم دیگه بسیاری از عزیزان تلفونه بنیاد نشابو خاستند دوروواج یا همان تلفن هشتاد و هشت شش بیست و هفت و چهار و شش بیست و هفت هشتاد و چهار من سؤالی داشتم در رابطه با تاثیر فردوسی بر خیام. می‌خواستم ببینم آیا خیام اشاره اشاره تیری به نسبت فلسفی داشته و یا به هر تیری چیزی ازش یاد کرده یا در حال فلسفی تاثیری بر خیام می‌شه می‌دیدی؟ معنی سؤالم رو هم اگر منظورم متوجه تام نگشت، من خیلی متأسفم. شاید یکم اشتباه شده. نمی‌تونم همینطوری رو بگم من یک چیزی دارم. ممکنه است جواب روان هستم، تهران صحبت میکنم خدا بیگومان من بر روان همه ایرانیان پس از خود تحصیل گذاشته از خیام خبری به ما نرسیده اما از پور سینا خبر داریم که بزرگترین در حقت شادمانه روزگار شادمانه او با خاندان شاهنامه همراه بوده. خیام هم چنین بوده بیگمان خیام همچنین بوده تا از نوشته ها با کارهای خیام زیاد بودست ما نرسیده اونچه که در اشعار هست بیشتر افزود است یعنی بیشتر از فردوسی خیام مورد حمله افسودندگان قرار گرفته که اونو به نوبه خودش امیدوارم که من یکی دو سال دیگه, دو سال دیگه با امید خدا معرفی کنم هم صدقانم شما... من نفهمیدم میدم و... واجه گفته شد که من نفهمیدم. اگر صدقان باشه از نام... از نام های جدیدی که فرنگستان اول گذاشت برای یک رده ای از ارتشیان ولی اگر استوار باشه که استوار یعنی کسی که بر روی استوار خودش بار هست یعنی رو پای خودش اصداده سپاس کذارم مستدونی شاد باشی بر شما خوش مانده نباشی بر مانده سپاس گذارم از شما و شنون دیگاه اینکه که برنامه ما رو شنیدید و همطور از خانم صحرابی و همکاران دیگه برنامه که در تقییه این برنامه کمک کردن خداحافظ شما ایرانیان